پول شام را می پردازد و با بی حساب شده ای از زن سوال می کند که آیا برای نوشیدن قهوه به خانهش می رود یا نه؟ زن لبخند می زند و به زمین خیره می شود زیر میز او در حال تا کردن سفره صفری کاغذی به شکل مربع های هرچه کوچک است زن میگوید: گوید آلیست واقعا است، ولی صبح باید خیلی زود بیدار بشم تا به پرواز فرانکفورت برای این قرار ملاقات برسم. پنج و نیم یا حتی زودتر باشد برای وقتی دیگر. آلیست، واقعا است. یک لبخنده دیگر. دستمال سفره بر اثر فشار پاره پاره می شود. زن قول می دهد که از آلمان زنگ بزند و می گوید که آنها حتما دوباره به زودی یک را خواهندید شاید در همان روز بازگشت زن این قول ناامیدی مرد را کاهش می‌دهد ولی تا اواخر روز موعود هیچ خبری از تلفن زن نیست سرانجام زن از باجه تلفن فرودگاه فرانکفورت زنگ می‌زند در پس زمینه صدای عده زیادی و صداهای گوش خراشی شنیده می‌شود که پرواز هواپیماها به شرق را اعلام می‌کنند زن به مرد میگوید که میتواند هواپیمای بزرگی را از پنجره ببیند و این محل مثل جهنم است. زن میگوید پرواز لفتانزای لعنتی تأخیر دارد و او سعی خواهد کرد در یک خط هواپیمایی دیگر جایی پیدا کند ولی مرد نباید معطل او شود. سپس مکسی میکند و بدترین چیز را تأیید میکند. او میگوید فعلا اوضاع زندگیش کمی قراش میشست و واقعا نمیداند چه میخواهد میداند به زمان و فراغت خاطر نیاز دارد و اگر مرد موافق است خود او پس از اینکه فکرش کمی جم و جورتر شد تلفن خواهد زد یک شاید شوپنهاور های نامطبوعی از علت عاشق شدن ما به دست داده باشد ولی این تبعینها سبب تسلی ما در برابر عدم پذیرش نزد طرف مقابل می شود از اینکه میفهمیم درد ما به بهنجار است تسلی مییابیم ما نباید از ناراحتی و نگرانی شدید حاصل از فقط چند روز امیدواری پریشان خاطر شویم نامعقول است اگر نیروی چنان قدرتمندی که ما را به طرف بچه دار شدن سوق می‌دهد در صورت ناکامی در رسیدن به هدفش بدون تأثیرات تخریبی محو شود عشق نمیتواند بدون آنکه به ما بزرگترین خوشبختی قابل تصور را نوید دهد، ما را به پذیرش سنگینی بار تکسیر نوع بشروا دارد. شگفت زدگی از شدت آسیب ناشی از عدم پذیرش نزد طرف مقابل یعنی قفلت از پیامدهای پذیرش او. هرگز نباید بگذاریم اظهار نظرهایی مبنی بر عجیب و غریب بودن چنین رنج کشیدن شدیدی در و رنج ما را افزایش دهند. اگر با این شدت رنج نمیکشیدیم، یک جای کار اشکال داشت دو نکته دیگر اینکه که ما دوست نداشتنی نیستیم خود فی نفسه ما هیچ چیز ناجوری ندارد نه شخصیت ما نفرت آور است نه چهره ما مشمع کننده وصل از میان رفت زیرا برای ایجاد کودکی متوازن با فردی خاص متناسب نبودیم لازم نیست از خود متنفر شویم سرانجام روزی با کسی برخورد خواهیم کرد که ما را عالی میپندارد و به طرز استثنایی با ما احساس صمیمیت و راحتی خواهد کرد. زیرا از منظر اراده معطوف به حیات ترکیب چانی ما و او مطلوب است. سه باید به موقع یاد بگیریم کسانی را که درخواست ازدواج ما را نمیپذیرند ببخشیم. جدایی انتخاب آنها نبود. هرگاه کسی همان فرد پس به طرز خندداری سعی می کند. دیگری را از این امر آگاه سازد که به زمان یا فرصت بیشتری احتیاج دارند یا میلی به متعهد شدن ندارد یا از سمیمیت می‌ترسد. میکوشد تا حکم منفی ذاتن ناخداغاهانه ای را که اراده معطوف به حیات بندی کرده است اقلانی کند ممکن است اقلانها صفات ما را بستاید ولی اراده معطوف به حیات آنها چنین نباشد و طوری از ما انتقاد کند که هیچ استدلالی را برنتابد یعنی آنها را از نظر جنسی به ما علاقه من نسازد اگر آنها فریفته افرادی کمهوشتر از ما شوند نباید ایشان را به دلیل سطحی بودن محکوم کنیم همونطور که شپنهاور میگوید باید به یاد داشته باشیم که در ازدواج کسی به دنبال مشغولیت اقلانی نیست بلکه همه در پی به دنیا آوردن فرزند هستند چهار در هر عدم پذیرشی میتوان حکم طبیعت آن تولید مثل خاص را دریافت ما باید به این حکم احترام بگذاریم همانطور که به آزرخش یا گدازه های آتش فشان احترام میگذاریم رویدادی بسیار بد ولی قوی تر از ما ما باید با این فکر تسلی یابیم که فقدان عشق بین یک مرد و زن عبارت است از بیان اینکه فرزند احتمالی آنها فقط موجود ناخرسند بدقواره بیتوازنی خواهد بود ممکن بود که ما با محبوب خود خوشبخت باشیم ولی طبیعت چنین نیست دلیل مهمتری برای چشپوشی از عشق خود تا مدتی مرد اسیر افسردگی است در تعطیلات آخر هفته در پارک باترسی قدم میزند. و روی نیمکتی مشرف به رودخانه تمز می‌نشینند با خود نسخه شمیزی از کتاب رنجهای ورتر جوان اثر گوته را به همراه دارد که اولین بار در سال 1774 در لایپزیگ منتشر شد زوجهایی وجود دارند که ها را هلم می‌دهند و با دست بچه‌های کوچک را راهنمایی دختر بچه‌ای با لباس آبی و سر و صورتی پر از شکلات به پیمایی اشاره می‌کند که می‌خواهد در فرودگاه هیسرو فرود بیاید. او می‌پرسد بابا خدا اونجاست؟ ولی بابا عجله دارد و سرحال نیست و او را بلند می‌کند و میگوید "نمیداند." انگار از او نشانی محلی را پرسیدهاند پسر بچه‌ای چهار ساله‌ای با سچرخه خود به درخچه‌ای می‌خورد و با گریه مادرش را صدا می‌کند. مادری که تازه همین حالا روی پتوی کوچکی خوابیده که روی علف های رنگار رو رفته انداخته است. او از شوهرش میخواهد به بچه کمک کند. شوهر با عصبانیت جواب میدهد که نوبت زنش است. زن با تهکم میگوید که نوبت شوهرش است. مرد چیزی نمیگوید. زن میگوید که مرد آشغال است و بلند می شود. در نیمکت مجاور زوجی مسنتر بدون سر و صدا یک ساندویچ تخم مرغ و شاهی را با هم تقسیم می کنند. یک. شوپنهاور از ما میخواهد که از این بیچارگی تعجب نکنیم ما نباید در یک زوج یا والد دنبال دلیلی برای سرزنده بودن باشیم. دو. در کتابخانه شپنهاور کتاب های زیادی درباره علوم طبیعی وجود داشت. از میان آنها میتوان به درامدی بر هشر شناسی اثر ویلیام کربی و ویلیام اسپنس. زنبورهای اصل اثر فرانسوا اوبر و در باب موشهای کور، خلق و خو، آدات و شیوه کشتن آنها اثر کاد دوو اشاره کرد. شپناور درباره باره مورچه ها، حشرات ملخها هشرات، ملخ ها، موشهای کور و پرندگان مهاجر مطالعه کرد. و با شفقت و حیرت دید که چگونه تمامی این مخلوقات سرسپاری احمقانه پرشوری به زندگی دارند؟ او نسبت به موش کور همدردی خاصی احساس می کرد. موجود زشت و بدقوارهی که در دالانهای باریک مرتوب زندگی می کند، به ندرت رنگ آفتاب را به خود می بیند و بچه های شبیه ژله مانند هستند. ولی با وجود اینها تمام توانش را برای بقا و تداوم نسل خود بکار می کل کسب و کار سراسر زندگی او هفاری سرسختانه با چنگال های بیلمانند بزرگش است. اطراف او هموارش شب است. چشم هایی بسیار کوچکش فقط به درد اجتناب از نور میخورند. با این زندگی سراسر مشکل و بیلذت به چه چیزی می مصائب و مشکلات زندگی با سمرات و منافع آن قابل مقایسه نیستند. به نظر شپنهاور هر موجودی بر روی زمین همانقدر به زندگی به همان اندازه بی‌معنای متعهد است در سخت کوشی مداوم مورچه‌های کوچک بدبخت تعمل کنید زندگی اکثر حشرات چیزی نیست مگر کاری بی وقفه به منظور تأمین غذا و مسکن برای نسل بعدی که از تخم‌های آنها به وجود می‌آیند پس از اینکه نسل بعدی غذا را مصرف کرد و به مرحله شفیره ای وارد شد آنها هم پا به عرصه حیات می‌گذارند صرفاً برای اینکه همان کار را دوباره سرگیرند غیر از اینکه بپرسیم تمام این کارها چه فایده ای دارد هیچ کمکی نمی‌توانیم بکنیم چیزی نمی‌بینیم مگر ارزای گرسنگی و شور جنسی و خرسندی موقتی ناچیزی گاه و بیگاه میان نیازها و تقلاهای بیپای سه، شپنهاور مجبور نبود شباحت های ما با حشرات را توضیح دهد. ما امور عشقی را دنبال می کنیم. در کافه ها با شریک زندگیاتی خود گپ میزنیم و بچه دار میشویم. از این نظر به اندازه موش های کور و مورچه ها حق انتخاب داریم و به ندرت از آنها خوشبخت‌تر هستیم. چهار، او نمی‌خواست ما را افسرده کند. بلکه میخواست از انتظاراتی خلاصمان کند که موجب احساس تلخ کامی میشوند. وقتی عشق ما را در هم شکسته، تسلی بخش است که بشنویم خوشبختی هرگز جزئی از برنامه نبوده است. قمگین ترین متفکر شاید به طور ناسازواری شادترین ترین اندیشمند باشد. فقط یک اشتباه مادرزادی وجود دارد و آن این است که میپنداریم زندگی میکنیم تا خوشبخت باشیم. تا زمانی که بر این اشتباه مادرزادی پافشاری کنیم، جهان پر از تناقض به نظر ما میرسد. زیرا در هر قدمی، در مسائل کوچک و بزرگ، مجبوریم این امر را تجربه کنیم که جهان و زندگی قطعا به منظور حفظ زندگی سرشار از خوشبختی آرایش نیافدند. به همین دلیل سیمای تقریبا همه افراد سال خورده، حاکی از احساسی است که ناامیدی خوانده می شود. اگر با انتظارات درستی به عشق رو میآوردند هرگز چنان ناامید نمیشدند. آنچه دوران جوانی را دل را آور و ناخرسند میسازد، جستجوی خوشبختی بر اساس این فرض استوار است که باید در زندگی با خوشبختی روبرو شویم. این امر منجر به امیدی هموار واهی و فریبنده و نیز نارضایی می رؤیاهای ما سرشار از انگاره های فریبنده ی خوشبختی مبهمی هستند، که به صورتهای گزینش شده هوسانگیزی در خیال ما پرسه میزنند و ما بیهوده به دنبال نسخه اصلی آنها می‌گردیم جوانان فکر می‌کنند جهان چیزهای زیادی دارد که به آنها بدهد اگر می‌توانستیم به کمک پند و اندرز و تعلیم به موقع این فکر نادرست را از ازهان آنها بزداییم به موفقیتهای زیادی نایل می‌شدیم بخش سوم ما نسبت به موشهای کور یک امتیاز داریم. ما هم مثل آنها مجبوریم برای بقاب بجنگیم جنگیم و شریک زندگی خود را شکار کنیم و بچه داشته باشیم. ولی علاوه بر آن می توانیم به تئاتر، اپرا و کنسرت برویم و شبها در رخت رمان، رومان، فلسفه و اشعار هماسی بخوانیم. شپنهاور چون این فعالیتهایی را خواستگاه متعالی رهایی از نیازهای اراده معطوف و حیات می دانست. آنچه در آثار هنری و فلسفی می بینیم نسخه های عینی دردها و تقله خودمان هستند که با زبان یا تصویر مناسبی مجسم و تعریف می شوند. هنرمندان و فلاسفه نه فقط به ما نشان میدهند چه احساسی داشتهیم بلکه تجربیات ما را تأثیرگذارتر و هوشمندانهتر از خودمان بیان می کنند. ایشان جنبه‌های از زندگی ما را به تصویر می‌کشند که خودمان قادر به تشخیص آنها هستیم ولی هرگز نمی‌توانستیم با چانان شفافیتی آنها را درک کنیم. هنرمندان و فلاسفه وضعیت ما را به خودمان توضیح می‌دهند و به این ترتیب به ما کمک می‌کنند تا در این وضعیت احساس تنهایی و پریشانی کمتری داشته باشیم. شاید مجبور باشیم به حفاری زیرزمینی ادامه دهیم ولی از طریق کارهای خلاقانه می توانیم حد اقل هایی درباره غم و قصه های خود پیدا کنیم که ما را از احساس وحشت و انزوا و حتی زجر کشیدن ناشی از این اندوها خلاص می کنند فلسفه و هنر به دو شیوه متفاوت به ما کمک می کنند تا به قول شاپنهاور درد را به معرفت تبدیل کنیم شپنهاور دوست مادرش یوهان والفگانگ را به این علت می ستود که بسیاری از دردهای عشق را به معرفت تبدیل کرده بود. مشهورترین اثر او رومانی بود که در بیست و سالگی منتشر کرده بود. رومانی که نامش را در سراسر اروپا بر سر ها انداخته بود. های ورتر جوان، عشق نافرجام یک مرد جوان به یک زن جوان لوته زیبا، که مثل ورتر به داستان کشیش ویکفیلد علاقه داشت و لباسهای سفید با روبانهای صورتی در اطراف هاستین ها هاگش می پوشید را بازگو می کرد. ولی در عین حال امور عشقی هزاران نفر از خانندگانش را هم توصیف می کرد. گفتند ناپلون نه بار این رمان را خوانده است. آثار بزرگ هنری بدون آنکه ما را بشناسند با ما سخن می گویند. به قول شپنهاور شاعر امریک کاملا خاص و فردی را از زندگی برمیگیرد و به درستی با نظر به فردیتان امر توصیفش می‌کند ولی با این کار کل هستی بشری را آشکار می‌کند گرچه به نظر میرسد دل مشغول امر خاصه است در واقع دل مشغول چیزی است که همه جا و همه وقت وجود دارد در نتیجه این جملات به ویژه جملات شعرهای دراماتیک حتی بدون اینکه کلمات قصار آم باشند اغلب در زندگی واقعی کاربرد پیدا می‌کنند. خوانندگان اثر گوته نه فقط خودشان را در رنجهای ورتر جوان باز می‌شناختند، بلکه در نتیجه مطالعه آن کتاب خودشان را هم بهتر می‌فهمیدند. زیرا گوته مجموعی از لحظات زودگذر و آزارنده عشق را شفاف کرده بود. لحظاتی که خانندگانشان قبلاً آنها را تجربه کرده بودند. گرچه ضرورتا به عمق و جرفایشان پی نبرده بودند. او برخی از قوانین عشق را معرفی کرد، یعنی آنچه شپنهاور ایده های ذاتی روانشناسی رومانتیک میخواند. برای مثال، او به بهترین نحو رفتار ظاهرا مهربانانه ولی با وجود این به شدت بی‌رحمانه فرد غیر عاشق با فرد عاشق را درک کرده بود. در اواخر رمان ورتر که از احساساتش آسیب دیده در برابر لوت از پا در می آید. او گریست لطه دیگر نباید تو را ببینم لطه جواب داد چرا؟ ورتر تو می توانی و باید دوباره به دیدار ما بیایی ولی کمتر هیجان زده باش اوه چرا باید با چنین روح پرشوری زاده شده باشی با چنین شور مهار نشدنی نسبت به هر چیزی که به آن نستیک هستی دست ورتر را گرفت و ادامه داد خواهش میکنم تر باش به های زیادی بیاندیش که روحت دانشت و استعدادهایت به تو می‌بخشد لازم نیست در آلمان نیمه دوم قرن هجدهم زندگی کرده باشیم تا جملات بالا را درک کنیم تعداد داستان ها از تعداد مردم جهان کمتر است و پیرنگها ها بی تکرار می در حالی که اسامی و پس زمینه ها تغییر می کنند. شپنهاور می که جوهر هنری است که یک مورد هنری برای هزاران نفر کاربرد دارد. وقتی در می که مورد ما فقط یکی از هزاران مورد است تسلی می آبیم. شپنهاور دوبار در 1818 و 1822 به فلورانس سفر کرد به احتمال زیاد او از کلیسای برانکچی واقع در سانتا ماریا دلکار مینه بازدید کرد در این کلیسا مجموعی از دیوارنگاره ها وجود دارد که در فاصله سالهای 1425 و 1426 میلادی به دست مزد کشیده شده است در یکی از این دیوارنگاره ها ناراحتی و اندوه آدم و هفبا در هنگام خروج از بهشت تصویر شده است این ناراحتی و اندوه فقط مختص آنها نیست. مازاتچو در صورتها و حالت این دو نفر جوهر ناراحتی و اندوه خود ایده اندوه را ترسیم کرده و دیوان او نماد شمولی از جایز الخطا بودن و تسلسل ماست. همه ما از بهشت آسمانی اخراج شده‌ایم. مطالعه داستان سوزناک عشقی سبب می‌شود خاستگاری که جواب رد گرفته حال و روز بهتری پیدا کند زیرا دیگر او یگان کسی نیست که در تنهایی و پریشانی رنج میبرد بلکه جزئی از مجموعه گسترده انسانهایی است که در طول تاریخ عاشق دیگر انسانها شدهاند چون به حکم سائقه دردناک خود میخواستند نوع بشر را تکسیر کنند. از تلخی رنج او اندکی کاسته می شود. رنج او بیشتر قابل درک می شود و کمتر بدبختی منحصر به فرد شخصی شمرده می شود شپنهاور درباره کسی که می تواند به چنین عینیتی برسد می گوید در تمام بدبیاری های زندگی کمتر به تقدیر فردی خود و بیشتر به تقدیر بشریت به عنوان یک کل خواهد نگریست و بنابراین شناسنده خواهد بود نه رنج دیده ما باید در فواصل دوره های هفاری در تاریکی همواره بکوشیم تا عشقهای خود را به معرفت تبدیل کنیم